چهارم آوریل 1973، زمانی که پروژه ساخت مرکز تجارت جهانی در منحتن نیویورک به پایان رسید گفته می شدد برچ های دوقلو طوری طراحی شده که حتی پس از برخورد یک بوی 707 نیز پا برجا خواهندند صبح روز 11 سپتامبر 2001، شبک های تلویزیونی آمریکا برنامه های عادی خود را قطع کردند و دولت مردان ایالات متحده که به نظر سراسیمی می رسیدند به تشریح حادثه پرداختند. دستجور برای پیدا کردن حاملان این اقدامات شرورانه آغاز شده. ما میان کسانی که این اقدامات را انجام دادند و آنهایی که نقشی آن را در سر می پربرندند، خفاوتی قائل دکتر رضا امیری مقدم عضو حیعت مذاکره کننده با امریکا در موضوع ایراق. اصلاً موقعی که اتفاق در آمریکا افتاد هم دولت ایران اون حادثه رو محکم کرد. هم مردم ما کسی اظهار خوشحالی هدقاً نکرد که خوب شد مردم آمریکا امریکا برج و فروری مردم آمریکا کشته شدن. کسی از این مسئله تو ایران هدقاً استقبال نکرد اگر نگیم که هم لردی کردن با مردم آمریکا. خود هاذی از سپتامبر که حالا در ماهیت این حادثه هم هنوز اپاماد زیاد وجود داره اما یک فرصتی به امریکا داد که به بهانه مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، راهبردیه مبارزه جهانی با تروریسم رو در اختیار خودش بگیره. باور میآره انتخابش شد طبیعی بود که بعدین جای هم که میاد از افغانستان سفید با اقداماتی پیاپی، نزیر معرفی گروه القاعده به عنوان عامل اصلی حادثه، آماده کردن افکار عمومی برای حمله به افغانستان، فراهم کردن مقدمات نظامی یک لشکرکشی بزرگ و صدور فرمان حمله به افغانستان توسط رئیس جمهور آمریکا در کمتر از یک ماه خود را آماده ی حمله به افغانستان کرد و در نهایت ناقوس جنگ در هفتم آوریل 2001 به صدا درمند. بعد هم موقعی که به افغانستان حمله کردن ایران مزاحمتی برای اونها ایجاد نکرد چون به حال طالبان هم یک گروهی بود که گروهی مسئولیت خطرناک از دور شما خارج از اسلام به نام اسلام یعنی ما هم به اندازه کافی با طالبان مشکل داشتیم آقای حسن کاظمی قمی رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده با امریکا در موضوع ایران و سفیر وقت ایران در ایران خب طالبان به اعتراف هم خود امریکایی ها هم متحدین امریکا ساخته و پرداخته ی امریکایی ها و انگلیسی ها مالی سعودی ها و حتی پاکستان طالبان که از ابتدا به مردم افغانستان تحمیل شده بود مغروب داران آمریکایی شد اما رویای بزرگتری در سر دولت مردان آمریکا ساینداخته بود. اما آمریکایی همین که از فراغ و پیدا کردن جمهوری تام اعلی آمریکا ما رو در کنار سوریه سودان و چند کشور دیگه شمالی به عنوان میوه‌ شرارت معرفی کردن. This is a regime that has something to hide. Like بحث ها سر تعیین هدف بعدی بالا گرفته بود. مثل گذشته، هدف ساده تر، طرفداران بیشتری داشت. حالا، مأموریت رسانه ها داغ نگه داشتن تنور بهانه تراشی ها برای حمله به هدف دوم بود. بعد از افغانستان نوبت به عراق شد. آمدن آمریکا به افغانستان و اراق باز با همون نگاه اون هژمونی سلطنتی که بعد در نظام بین الملل ایجاد کرد. خب اگر به فضای اون روز برگردیم توی آمریکا توی محافل آمریکایی بس این بود که به ایران حمله کنیم یا به عراق حمله کنیم. ما خود که اون روز دنیا، اون جو اون روز دنیا این بود که ایران هدف سخته. ما نباید بریم خودمون با هدف در درگیر کنیم به هر حال ها به مجموعه دلایلی به ایران حمله نکردن. گفتن چیکار میکنیم بودن عراق انتخاب میکنن. بودن عراق. عراق رو چرا انتخاب میکنه؟ عراق چند تا پارامیت داشت. بهانه عراق خوبه. اینکه عراق فلاهای خوشدار جمعی داره، اینکه عراق دولتش دیکتاتوریه. امکان اینکه با تروریسم توانی صورت بگیره و سلاح جمعی میفرند در اختیار تروریسم قرار بگیره و این امنیت جهانی رو با خطر میندازه نا میشه برای اینکه امریکا همه خودش رو داشته باشه عراق به دلیل این از 91 به بعد که دیگه ایران و عراق رو دو تا بردن تو معارضه دو جانبه عراق کاملا منحدم شده بودش شکاف مردم و حاکمیت در اوج دو در عرف منطقه و در عرف بین الملل و کشور منفوره یاگیه نمی دانند عراق دو کشور ایران و کویت حمله کرده بود تو جامعه جهانی و مندری منفون. و از این منظر هم آمریکا آمد و ایران شد و ایران رو اشغال کرد، بژیم و فابریت کرد. و از همه منظر در فنگری آمریکایی قانونی تحسیش شده بود. قانون آزادسازی اراب. این هم داشت. یعنی همه‌ی پارامترهایی که اونا حمله کنن فعلا اروپا را زلزله بردارن وجود داشت. اما آیا هدف بود؟ At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. اما آیا هدف عراق بود به این جمله هدف امریکای جمهوری اسلامی ایران بود ولی اونا بین این که بیان مستقیم به ایران حمله کنن من توضیح دادم مشکلاتی که داشتن قضیه اونا میگفتن ما میریم عراق رو ساقط میکنین عراق رو یه تبدیل میکنیم به یه حکومت الهام بخش یه حکومت الگو ایرانی ها خودشون میان از این درس میگیرن این حکومت نظام جمهوری اسلامی رو میکنن یا قدرت رو ایده ای امریکا یا این بود نه اینکه میان مثلا می‌خازه خدمتی بکنن به مردم عراق رهبر انقلاب اهداف آمریکا از حمله به عراق را در ابتدای سال 82 تشریح کردند حرم امام رضا علیه السلام اول فروردین 1382 اگر ها میگن برای دموکراسی داریم میجنگیم دروغ میگن برای نفت دارن میجنگن برای روی کارآوردن یک رژیم موچی و تسلیم خودشون دارن می جنگر. برای تصرف ایراد برای اینکه که این کشور قدیمی را اون ملت کوهن را اون منطقه حساس را و اون منابع سرشار و غنی را یک سره در قبضه خودشون بگیرن کاخ سفید یک جنرال بازنشستی آمریکایی را به عنوان حاکم اراق منصوب کرد. اتفاقی که در اراق افتاد این بود. این از 29 اسفن تا 20 فروردین 82، یعنی 21 روز شاملید که این رژیم ساقت میشه و امریکا سرمست پیروزی نظامی در صحنه اراق میشه. تنهاکشوری بودیم تو منط اعلام کردیم که ما با اشغال عراق توسط آمریکا مخالفیم. یعنی قبول نداریم ال روم که ما ه سال با صدام جگیریم ال رمی که دوستان ما کشیه و کرد باشن سال های سال از همه یه چیز در عراه معروم شده بودن اما ما هیچ وقت موری سای رسما نهپذیرفت که اشغال عراق کار خوبی نه شما تو میدونستیم دروغ میگه آمریکا آمریکا اگر راست می بود در انتفاضه 90 یک میذاش مردم عراق پیروز پیوز دیگه. این معلوم رو برای خودش هدفی برد نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که امریکا برای رو به اراق برخلاف توافقات اولیهی که برای ره ایران اراق داره به معارزین داره بدون اینکه که بره شورای امنیت سازمان در مجوز بگیره همه رو انجام میده. چرا امریکا این کارا نکنه؟ دلیلش روشنه یعنی امریکا در حقیقت با اشکرکسی به ایراب سقوط این رژیم اشخال این کشور بدون رجوع به چورای امیل اصفان ملال پیام می دهید پیام اینه که روییگ بین المللی دیگه عوض